مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم حباداران کویش را چو جان خیشتن دارم صفای خلوت خاطر از آن شم اچه جویم فروغ چشم و نور دل از آن ماه خوتن دارم به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل چه فکر از خبس بدگویان میانه انجمن دارم مرا در خانه سروی هست کن در ساگه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند به همدل لاقه و المنه بطی لشکر شکن دارم سزد که از خاتم لعنش زنم لاف سلیمانی چو اسم اعظمم باشد چه باک از احر من دارم علا پیر فرزانه مکن ای بمزمی خانه که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم خدا را ای رقیبم شب زمانی دیده بر هم که من با لعل خاموشش نهایی صد سخن دارم چو در گلزار اقبالش خرامانم به حمدله نمیر لاله و نرگس نبرگ مسترن دارم پر رندی شهرت شد حافظ میان همدان لیکن چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم